پتومت جزو محبوب ترین انیمیشن که تا حالا ساخته شده. این دو شخصیت همیشه سعی در تصیح اشتباهات خودشون با استفاده از تمامی وسایل ممکن و غیر ممکن و خوردریز می که نهایتا مشکلات جدیدی رو به وجود می آورد. آخر سر هر دو اقدام به حل مشکل با روش عجیب و غریب می کردن. این مجموعه علاوه بر خند دار بودن نمایش دیدگاهی خوشبینانه نسبت به زندگی رو ارائه می‌داد. چون این دو شخصیت رویایی هرگز با به وجود اومدن مشکلات جدید دل سرد نمی و مشکل رو با روش های تخیلی و نامتعارف حل می کردن. این مجموعه به خاطر موسیقی زیباش که توسط پیتر اسکومال ساخته شده بسیار خاطر انگیزه یک پستچی کوهنکار به نام پت برای به چالش کشیدن باورها و استعدادهای خودش وارد یک مسابقه اون هم توی تلویزیون میشه. We'll قطعهن قدیمی و به یادماندنی خالریزه و قاشق سهرامیز ماجرای پیرزنی ماجروجو بود که به وسیله قاشق طلای خودش کوچک میشد. او میتونست با حیوانات حرف بزنه بعدی می‌کنید، فیکس می‌کنم داخلش یکم به هم ریخته باشه. او اصلا اشکالی نداره. ماهی‌ها رو وسهیت کنید، آنوشه جون کنید و لذت ببرید. مژه‌ ماهی دیگه بهقره. خب می‌چینیم حرکت کنیم. ما فقط یه شب از کربات استفاده می‌کنیم. مراقب <تصفيق> خودتون باشید. حالا من در میرم گیری. لطفا تو هم مرتب کن. باشه. <América> بلفی نام یک دختر بچه مهربون بود که پیش اموش زندگی میکرد و از پدر و مادرش هیچ خبری نداشت. للی بیت هم یک پسر چابک و زرنگ بود که همیشه به بلفی کمک میکرد. این دو به همراه چند بچه دیگه از سرزمین پانتها. در هر قسمت ماجراهای جذابی رو خلق می کردن بلفی و لیلی بیت. اعدادی موش خنددار تصمیم به از بین بردن دشمن اصلیشون که یک راسوی سفید به نام شیطان بود به راه و در حین این سفر مشکلات فراوانی جلوی راهشون قرار میگیره و سگ در مبارزه با اون می کنن. دنبا. گمبارا می دوزنم شن عروسکی پینگو مربوط به یک پنگوان بود که به همراه خانواده‌اش در قطب زندگی می‌کردند و در هر قسمت از این کارتون ماجرایی اتفاق می‌افتاد. مارکوپولو داستان تاجر ایتالیایی، جهانگرد و مسافر جاده ابریشم بود های مارکو پولو. داستان سفرهای مارکو به سرزمین های ناشناخته هرچند با وقایه خشوندبار و دردناک همراه بود ولی مارکو تاخت و تاز مردان اسب سوار مغولی رو با توصیف مکان‌های زیبا و آواز شنهای بیابان ترکیب تا بتونه فرهنگ اصیل مردمان شرق رو به مردم غرب معرفی کنه. در خاطرات مارکو هم میتونیم نوشته نوشته‌هایی در تعریف از مردم و حکومت شرق پیدا کنیم و هم از نقاط تاریکی در زندگی هوقوب لایخان باخبر بشیم. در واقع وقتی مارکو از سختی‌های زندگیش مثل تشنگی دائم در بیابان‌های خشک و بی آب و درگیری با راهزنان حرف میزد هیچگاه مردم شرق رو وحشی و بیتمدون معرفی نمی‌کرد. یک جنتلمن انگلیسی به نام آقای فوگ با رفقای خودش در باشگاه شرط میبنده که دور دنیا رو در 80 روز طی کنه و به همراهی خدمتکار وفادارش به نام جان معروف به پاسپارتو عازم سفر میشه اما چون مظنون به سرقت از یکی از بانک های انگلیس زیر نظر یک پلیس قرار داره که اون آتی سیروسیا هاش لجوجانه تعقیب میکنه کارتون بسیار زیبا و به بیادماندنی سندباد و ماجراهای مبارزه با انواع تلسم و جادو و دیوپری یادآور خاطرات دوران کودکی ماست. این کارتون برداشتی از هزار و یک شبه که در اصل ایرانیه ولی چون ماجراهاش توی بغداده با نام شبهای عربی مشهوره. 너 دوکی سری کارتون های از روی کتاب های به تصویر در اومده و یکی از خاطر انگیزترین کارتون های قدیمیه در واقع تنتن -تن شخصیت خیالی و شخصیت اصلی داستان تصویری ماجره های تن -تن و میلوه او که جوانی بلژیکی بود، خبرنگاری خوشقلب، خلبانی توانمند و جنگجوی متبهری هم بود که در یک سری ماجره های جذاب و خطرناک قرار می گرفته. دوست همیشه همراه او در این ماجره ها ناخداهادوک بود که پس از آشنایی با تنتن تن تقریبا در تمام ماجره ها همراهش بود. مختر نوجوانی به نام آلیس به دنبال خرگوش سفیدی میره به داخل سوراخی سقوط میکنه و وارد دنیای جادویی میشه آیا او میتونه به خونه برگرده نه تا زمانی که ملکه قلبها جلوی راهشو گرفته خیمیشن بابا دراز اثر جین ویفستر یکی از آثار شاهکار دهه شسته بابا دراز در سال 1990 جایزه بهترین فیلم تلویزیونی رو از آژانس فعالیت‌های فرهنگی کودکان ژاپن دریافت کرده شخصیت اصلی این داستان جودی اووت دختر سرزنده و شادیه که در یک پرورشگاه بزرگ میشه اما با پشتیبانی مالی حامی ناشناس خودش میتونه به مدرسه خصوصی راه پیدا کنه. جودی که حامی خودش رو نمیشناخت و فقط در یک نگاه از پشت سر دیده بودش اونو بابا لنگ دراز نامید.